به سوی یک نسل برتری خفیف. من عاشق صحبت کردن درباره فلسفه برتری خفیف با نسل بعد از خودم هستم. زیرا چیزی که به وفور در دسترس آنهاست زمان است. شاید کلیهای باشد که بگوییم تمام زندگی شما در پیش رویتان قرار دارد، اما برای نوجوان و جوان ها این جمله عین واقعیت هست. از آنجایی که آنها سالهای زیادی را در پیش رویشان دارند فرصت منحصر به فردی دارند تا برتری خفیف را در زندگیشان بکار بندند و از طریق اثر موجی تأثیراتشان در دیگران جهان را تغییر دهند. وقتی در مراسم دهمین ده سالگرد فارغ و تحصیلیم از دبیرستان شرکت کرده بودم برایم بسیار ناراحت کننده بود که میدیدم برخی از دوستان و همکلاسی هایم در چه وضعیت بدی به سر می بردند. آنها دختران و پسران جوانی بودند که همه چیز برایشان مهیا بود تا مدارج ترقی را طی کنند و به جایی برسند. آنها باهوش، محبوب و خونگرم بودند، خانواده های مهربان و دوست داشتنی داشتند و فرصت بزرگی پیش رویشان قرار داشت. اما هرگز متوجه پیامدهای واقعی انتخاب های روزانشان نشده بودند. آنها هرگز متوجه اثرگزاری برتری خفیف در زندگیشان نشدند و هرگز نفهمیدند که علیه آنها عمل می کند. اشتباهات کوچک در تصمیمگیریهایشان که هر روز و در طول زمان تکرار می شدند آنها را بسیار دورتر از جایی برده بود که می خواستند به آن برسند. همین موضوع باعث شد تا بار دیگر متوجه شوم که چقدر خوششانس بودم. چرا که من در احاطه تفکر برتری خفیف بزرگ شده بودم و برایم خیلی سخت نبود تا انتخاب های روزمره ای داشته باشم که زندگیم را به مسیرهای مثبت و خوب سوق میدادند. یکی از بزرگترین آرزوهای من کمک به حمایت از جوان هاست تا این نوع انتخاب برتری خفیف را یاد بگیرند این بزرگترین آرزوی من برای نسل آینده است که فلسفه برتری خفیف را درک کنند و به قهرمان واقعی برتری خفیف در زندگی خودشان و اطرافیانشان تبدیل شوند. چند سال قبل از اینکه ویرایش دوم کتاب برتری خفیف منتشر شود، من و پدرم با همکاری بنیاد موفقیت، نسخه ای از کتاب برتری خفیف را برای کمک به نوجوانها تهیه و چاپ کردیم. عنوان کتاب این بود: موفقیت برای نوجوان ها واقعی از برتری خفیف میگویند. این ویرایش جدید از کتاب اصلی همان اطلاعات و مفاهیم کلیدی برتری خفیف را در قالبی ارائه می کرد که خواندنش بسیار آسان بود و تمرینات جذاب، گام عملی و داستانهایی از نوجوان واقعی به متن آن اضافه شده بود. هدف از تهیه کتاب این بود که در دسترس نوجوانها قرار گیرد و به آنها کمک کند تا اهدافشان را به وضوح مشخص کنند یاد بگیرند که چگونه اقدامات برتری خفیف ساده و ضروری برای موفقیتشان را انجام دهند مسئولیت سرنوشتشان را بپذیرند و آیندهی ای را شکل دهند که خواهانش هستند با تلاش بسیار زیاد بنیاد موفقیت این کتاب به دست میلیونها نفر از نوجوانهای سراسر جهان رسید تجربه شگفت‌انگیزی بود که دیدم نوجوانها و جوانها به سرعت و مشتاقانه ایده برتری خفیف و اثر موجی را درک کردند و به کار بستند. در طی فرایند تولید و چاپ آن کتاب راهندازی شرکت جدیدمان و برنامه های اثر موجی مربوط به آن می‌دیدیم که تعداد بسیار زیادی از نسل آینده در فعالیت اجتماعی سهیم می شوند و به قهرمان تغییر مبدل میشدند. سازمان های خیریه تأسیس شده توسط افراد جوان و همچنین زمانهایی که این افراد به خدمت رسانی به دیگران اختصاص می دهند در حال افزایش است. امروز جوان ها در خط مقدم تلاش های آگاهی دهنده زیست محیطی هستند. فکر می کنم قطعا به گفت که بسیاری از جوان های نسل آینده، مشکلات و مسائلی را که کشور ما با آنها مواجه هست، بسیار بهتر از سیاستمداران درک می کنند. آنها می‌دانند که وضعیت موجود فقط یک گزینه نیست و نمی‌توانیم کارهایی را که تاکنون انجام می‌دادیم ادامه دهیم و انتظار داشته باشیم که مشکلات برطرف شوند. جوانهای نسل آینده به جز شرکت در تلاشهای ارزشمند انسان دوستانه و خیرخواهانه قصد دارند که جهان را روز به روز نفر به نفر و انتخاب به انتخاب تغییر دهند. آنها میخواهند مسئولیت زندگیشان را بر عهده بگیرند و از سرزنش کردن نسلهای گذشته دست بردارند. آنها تلاش می کنند تا برای فراهم آوردن امنیت مالیشان چشم انتظار دیگران نباشند و خودشان به آن دست پیدا کنند. آنها قصد دارند تا با مراقبت از بدنهایشان همچون هدیههایی ارزشمند نسبت به سلامتی و سرزندگیشان هوشیار و آگاه باشند. آنها برای بزرگترین منبعی که در اختیار دارند یعنی زمان ارزش زیادی قائلند و تصمیمات روزمره درستی میگیرند که همه جنبه‌های زندگیشان را بهبود می‌بخشد. اثر موجی. هرگاه که پیشرفت مثبتی را در زندگیتان خلق می‌کنید، موجهای مثبتی را ایجاد می‌کنید که در اطرافتان پخش می‌شوند. درست مانند زمانی که سنگ سنگریزه‌ای در یک آبگیر می‌افتاد. البته ممکن است همه این موجها ها آشکار نباشند در حقیقت ممکن است اساسا نامشود باشند اما اینکه شما یا دیگران نمیتوانید آنها را ببینید به این معنا نیست که وجود ندارند آنها وجود دارند و تاثیرشان میتواند بسیار بزرگ باشد وقتی شما از طریق تعاملات و سخنانتان بر شخصی اثر مثبتی میگذارید باعث تغییری جزئی در او میشوید کسی که به احتمال زیاد بر شخص دیگری اثر مثبتی میگذارد. به عبارت ساده شما بر یک نفر اثر میگذارید که او هم بر نفر بعدی اثر میگذارد و این زنجیره همینطور ادامه پیدا می کند. با توجه هر روزه به آن اقدامات ساده مثبت عادتهای شادی و اقدامات منظم روزانه شما نه تنها بر خودتان اثر میگذارید بلکه در اطرافیانتان نیز تأثیر قدرتمندی خواهید داشت. شما به خیشاوند بهتر، دوست بهتر و همکار بهتری تبدیل می‌شوید. شما به پدر، مادر، پسر، دختر، برادر، خواهر، خاله، امو، امه و دایی بهتری تبدیل می‌شوید. شما به عضو موثرتر جامعه و رهبر فکری با نفوذتری تبدیل می‌شوید که تأثیر مثبتی در جهان پیرامونتان و به طور کلی جامعه خواهید داشت. همه ما همین حالا به نوعی یک اثر موجی داریم چه متوجه آن باشیم و چه نباشیم اما اگر خلق و خوی ما دائما تغییر کند و اقدامات ما متناقض و ناسازگار باشند اگر گاهی اوقات به مردم لبخند بزنیم و گاهی اوقات به دلیل اینکه روز بدی داشته ایم با بی‌احتنایی از کنارانها آنها عبور کنیم در این صورت آثار مثبت منفی ما ممکن است یکدیگر را خنسا کنند و اثر خالصانها کاملا ناچیز باشد بدتر اینکه اگر دائما به رفتارهای منفی تمایل داشته باشیم مثلا همیشه شکایت و ولند کنیم و به جای یافتن راه حلها فقط به مشکلات نگاه کنیم و نقش انتقاد کننده و بدبین ایفا کنیم آنگاه ممکن است اثر موجی خالص منفی داشته باشیم و جهان را بدتر کنیم همه ما این قابلیت و ظرفیت را داریم که اثر موجی قدرتمندی داشته باشیم فقط سؤال این است که می‌خواهید چه نوع اثری داشته باشید انتخاب همیشه با خودتان است از شما می خواهم به گفته های رن اولسون مادرم گوش کنید زیرا اصول برتری خفیف را به طور مداوم در روابطش به کار می برد و نمونه بسیار خوبی از اثر موجی است مادرم می گوید اولین تجربه برتری خفیف من در دوران کودکیم و با دیدن ارتباط متقابل مادرم با اطرافیانش شروع شد او هر روز در ارتباط با دوستانش و حتی غریبه ها تفاوتی را به وجود می آورد آن زمان نمیدانستیم که چه بود؟ اما حالا میدانم که برتری خفیف در عمل بود. من شخصیت دوستانه و به مادرم را به ارث نبردم اما قلب او را که برای مردم می تپید به ارث بردم. من این کار را به عادت تبدیل کردم که به هر کسی که به طور اتفاقی در کنار او هستم توجه کنم. اینکه به آنها و چیزی که در دنیای آنها در جریان است علاقه و توجه نشان دهم، از آنها سوال کنم و مهمتر از همه این که آنها را برای کارهای خوبی که انجام داده اند تشویق کنم و به آنچه درست است توجه کنم و درباره آن صحبت کنم، نه درباره چیزهای غلط و اشتباه. من حتی با غریبه ها، فروشنده ها، ها و اشخاص دیگری که در طی روز می چنین رفتاری دارم. من شخصی را که در صف خرید فروشگاه است مهمان یک کلمه محبت یا یک لبخند می و آنچه بعد از آن اتفاق میافتد این است که آنها صفره دلشان را برای من باز می و با من درباره زندگی شخصیشان صحبت می فقط به این دلیل که من به آنها علاقه و توجه نشان دادم حتی فقط برای لحظه کوتاه. ممکن است که هرگز دوباره این افراد را نبینم و اغلب نیز متوجه نمیشم که این برخورد های کوچک چه اثری بر آنها داشته است اما میدانم که این رفتارم مهم است حقیقت این است که ما هرگز نمی دانیم مردم ممکن است در هر لحظه به چه چیزی نیاز داشته باشند اما گاهی اوقات یک لبخند ساده، یک رفتار و حالت دلسوزانه، یک سؤال سمیمانه و صادقانه درباره زندگیشان یا فقط یک گوش برای شنیدن حرفهایشان ممکن است دقیقا همان چیزی باشد که آن شخص در آن لحظه به آن نیاز دارد انجام ندادن این کارها نیز بسیار آسان است یعنی اینکه فقط در افکار خودمان غرق شویم و برای توجه به آنچه در اطرافمان در جریان است هیچ تلاشی نکنیم. اما معتقدم اگر این کار را انجام دهیم و این عادت برتری خفیف ایجاد لحظه مثبت برای تمام کسانی که در مسیر ما قرار میگیرند را در خودمان پرورش دهیم، در طول زمان تغییری در موج منفینگری و بیتنناایی که اغلب در جهان با آن برخورد می کنیم، ایجاد خواهیم کرد. من تلاش می‌کنم تا چنین رفتاری را با دوستان و اعضای خانوادهم نیز داشته باشم. البته در مقیاسی بسیار بزرگتر. وقتی که آمber به دنیا آمد احساس کردم که مهمترین کار زندگیم آغاز شده است. تلاش کردم تا به هر روشی که می‌توانستم برتری خفیف را به او آموزش دهم و نگرش مثبت و دلگرم کنندهم درباره‌ی این که هر کاری را میتوان انجام داد، بیش از هر کس دیگری بر روی او آزمودم این کار را از زمان تولدش شروع کردم. او تنها فرزند من است بنابراین انجام دادن این کار باعث کم توجهی من به فرزند دیگری نشد اغلب بسیار آسان تر است که در مقابل کودکان هیچ گونه مقاومتی نشان ندهیم و مثلا به جای اینکه غذای سالم برای آنها آماده کنیم اجازه دهیم فستفود بخورند و به جای خاندن کتاب تلویزیون تماشا کنند یا به جای تعامل و ارتباط با دیگران اجازه دهیم که بازی کامپیوتری بکنند اما هر گونه تلاش بیشتر در این زمینه بسیار ارزشمند است من هر روز و به هر روشی که می توانستم بسیار تلاش می کردم تا او با کمک من تصمیم برتری خفیف بگیرد و این کار نتیجه بزرگی برمغان آورد او در بزرگسالی به زنی تبدیل شد که میداند هر کاری را که به ذهنش خطور کند می تواند انجام دهد من دیگر برای او تصمیمات برتری خفیف نمیگیرم زیرا حالا خودش تصمیمات برتری خفیف میگیرد و شک ندارم که آنها را به فرزندانش نیز منتقل می کند. مطالب پایانی واقعا مطلب دیگری نمانده که به گفته های انبر اضافه کنم. او تقریبا همه چیز را با دقت و کامل توضیح داد. فقط میخواهم برای روشنتر شدن موضوع مطلب کوتاهی را بیان کنم. انبر در شرکت ما دو شغل دارد. او نایب رئیس بخش بازاریابی شرکت است و کارش را فوق خوب انجام می دهد. اما در شغل دیگری نیز خدمت می کند و نایب رئیس بخش فرهنگی شرکت است. این شغل او تمام جنبش اثر موجی ما را رهبری می کند که شامل همکاری با سازمان مانند بیگ برادرز، بیگ سیسترز و بنیاد موفقیت است. تماشای او در حالی که بالهایش را می و پرواز می کند بسیار جنگی است. چند فصل قبل در مبحث قدرت زمان من ده ارزش اصلی و مهمی را گفتم که ارزش شرکت ما را در یک دوره یک ساله از صفر به صد میلیون دلار رساند. مسئولیت اجرای این ده ارزش اصلی و تبدیل آنها به یک ویژگی بنیادی و جدایی ناپذیر از فرهنگ شرکت بر عهده امبر بوده است. انبر بزرگترین مدرک و شاهد زندگی هم است که نشان می‌دهد برتری خفیف چه کارهایی می‌تواند انجام دهد من برای همه چیزهایی که برتری خفیف در زندگی هم انجام داده است بسیار سپاسگزارم از پاداشهای مالی و موفقیت در کسب و کار گرفته تا تندرستی، دوستی‌های عالی، یادگیری مستمر و پیشرفت شخصی از نظر هر پدری، هیچ چیزی خوشحال کننده تر از این نیست که ببیند استعداد دخترش شکوفا می شود و پرتوهایش را در سراسر جهان پخش می کند. دقیقاً مانند همین کاری که انبر می کند. از میان تمام روش هایی که می موفقیت شادی و رضایتمندی را تعریف کنید، از میان تمام راههایی که می اثر موجی را دهید مثالی بهتر از این به نظرم وجود ندارد. داستان شخصی از خانندگان کتاب رابرت کراج، مینیاپولیس، ایالت مینسوتا در دوران جوانی، مادرم و راگبی دو جزء جدایی ناپذیر و ثابت زندگی بودند. من خوششانس بودم که مادرم همیشه به من میگفت چیز خاصی تو پسر بچهش وجود داره. جزء جدای ناپذیر دیگرم یعنی راگبی فعالیتی بود که از اولین روزی که پا تو زمین بازی گذاشتم توش موفق بودم. راگبی باعث شده بود دیگران منو بپذیرند و این موضوع به من احساس باارزش بودن میداد. با گذشت زمان من به این ورزش بسیار پایبند و مقید شدم. مثل بسیاری از پسرای همسن و سالم منم رویای بازی تو لیگ انفل رو داشتم. تو دوران دبیرستان با تلاش بسیار زیاد جزء بازیکنای برتر مدرسه شدم و تو یکی از بهترین دانشگاه های امریکا بورسیه شدم. من به دانشگاه آیووا رفتم و به یکی از ده نفر برتر و ستاره خط دفاعی تیم دانشگاه تبدیل شدم. در سال 1989 به تیم قولهای نیویورک رفتم. اوج موفقیت کاریم وقتی بود که تو بازی فینال در مقابل بوفالو بیلز بازی کردم و تیم ما برنده شد. تو اوج بودم همه چیزم به وفق مرادم بود اما مشکلی که مثل یه قطار باری به هم ضربه زد این بود که احساس راحتی و آسودگی کردم من که از موفقیتام راضی و خوشحال بودم تو فصل بعد دچار یه چالش شدم و حتی تو یکی از مسابقات باعث شکست تیممون شدم این بدترین لحظه زندگی کاریم بود من به تنهایی باعث شکست تیممون تو لیگ NFL شده بودم رسانهها و مربیا با بدترین کلمات و عبارات به من هجوم آوردند من نیمکت نشین شدم و میترسیدم که از تیم اخراج بشم اما تصمیم گرفتم دوباره خودم رو اثبات کنم و تمام ترسام رو کنار بذارم تلاش زیاد و تمرینای سخت نتیجه داد موقعیتم رو دوباره به دست آوردم و دو سال بعد به یکی از بهترین بازیکنای آزاد لیگ نفل تبدیل شدم اگرچه تو اون زمان برتری خفیف و نمیشناختم ولی در حال عمل کردن بهش بودم یه قرار داد با دستمزد خیلی بالا امضا کردم که تو اون زمان یکی از بالاترین دستمزدهای لیگ بود بعدش دوباره آرامش آسایش برقرار شد نتیجه زحمتامو گرفته بودم ولی هنوز به اهداف شخصیم نرسیده بودم. بعد بازنشستگی از فوتبال یه مغازه خورده فروشی باز کردم و تشکیل خانواده دادم زندگیم به خوبی پیش میرفت دیگه خبری از اردوهای تمرینی سخت نبوده با مالکیت کسب و کار خودم یه زندگی رویایی داشتم بعد تو سال 2008 با شروع رکود اقتصادی زندگیم خیلی پر استرس و پر تنش شد البته نه فقط تو بخش اقتصادی 13 سال از زمان بازنشستگیم از لیگ نفل میگذشت و اضافه وزنم از کنترل خارج شده بود حالا 155 کیلوگرم گرم شده بودم کسب و کارم در حال ورشکستگی بود و بدنم به خاطر فشارای دوران فوتبال و قفلت از سلامتیم پر درد بود زندگیم پر از افراد منفی و مزر شده بود، افسرده شده بودم و از نظر عاطفی توهی و از پا افتاده بودم. آخرش، همسرم کریستی تصمیم گرفت برای کمک به وضع اقتصادی خانواده دوباره مشغول به کار بشه. اون یه شغل تو بخش فروش پیدا کرد و بخشی از آموزشش شامل تعدادی فایل صوتی الهام بخش و یک کتاب به اسم برتری خفیف بود. همسرم منو تشویق کرد تا اون کتابو بخونم. اولش در برابر این کار مقاومت کردم، ولی با مشاهده تغییرات مثبتی که تو همسرم به وجود اومده بود، ترغیب شدم این کتاب بخونم. من واقعاً علاقه ای به مطالعه کتاب ندارم، ولی کتاب برتری خفیف بلافاصله توجه منو جلب کرد. هرچند چند دیگران متوجه وضعیت اون دوران من نشدند، ولی اوضاع خیلی بدی داشتم. من استفاده از اصول برتری خفیف و تو زندگیم شروع کردم و اقدامای ساده و مثبتی که بارها تکرار کرده بودم اثر مرکبی را آغاز کردند، اثری که زندگیم و برای همیشه تغییر داد. فلسفه ها و ایده های برتری خفیف خیلی ساده به نظر می رسند ولی وقتی که دائما اونا رو به کار میبرین نتایج و شگفت شگفتانگیز دارن. سلامتی و روحیم دگرگون شد. شروع به خوردن مواد غذایی مغذی کردم و تمرینای ورزشی به یکی از فعالیتهای روزانم تبدیل شد. نه تنها وزنم آروم آروم کم شد، بلکه دیدگاه هم درباره اینکه چرا تغذیه‌ام خارج از کنترل بود، تغییر کرد. تو رستوران به خودم می گفتم خب سفارش دادن اون ساندویچ چیزبرگر خوشمزه آسونه، اما سفارش دادن اون ساندویچ مرغ و سبزیجات هم آسونه. در مدت حدود 1 سال بیشتر از سی کیلوگرم از وزنم کم شد و فقط در مدت نه ماه کلسترول خونم از هشتاد و نه به صد و هفتاد و نه رسید. حالا هر روز مطالب پیشرفت شخصی رو مطالعه می کنم و با درک منافع و مزایای اقدامات منظم ساده که در طول زمان بارها تکرار شدن میدونم که هرگز به اون شیوه زندگی ناسالم گذشته بر نمیگردم. بهتر از همه اینا اثری بود که این تغییرات بر دیگران داشت. وقتی خودم رو در هماهنگی کامل با اصول برتری خفیف دیدم، شگفت زده شدم. حتی گاهی اوقات از تغییرات به وجود اومده تو زندگیم هیجان زده و متأثر می شدم. من متوجه نشده بودم که هدیه واقعی برتری خفیف من اثریه که بر دیگر افراد زندگیم خواهد داشت. اعتبار ارزشی که سرانجام تو خودم می دیدم، آغاز به اثرگذاری موجی بر زندگی افرادی کرده بود که واسم خیلی اهمیت داشتند. حالا فرزندانم هم کتاب برتری خفیف و خوندن و اصولش رو در زندگی به کار می‌بندن دوستان و همکارانم متوجه تغییر اساسی و بزرگی تو طرز برخورد نگرش، صبر و قدرت پیگیری من شدن و شادی و خوشبختی نوظهورم رو دیدن ای کاش این کتاب تو دوران فوتبالم نوشته شده بود با این حال این کتاب برای من تو زمان مناسبی منتشر شد حالا تو نیمه دوم زندگیم هستم و این مهمترین نیمه زندگیه امارا به خوندن این کتاب و به بستن اصول برتری خفیف تو زندگیشون دعوت میکنم این کتاب نه تنها شما رو تغییر میده بلکه هر کسی رو که بهش اهمیت می تغییر میده نکات مهم <تصفيق> همه مردم دوست دارند که حضورشان تفاوتی در این جهان ایجاد کند اینکه بدانند زندگیشان اهمیت دارد موفقیت بیشتر، مسئولیت بزرگتری را به وجود می آورد. آن مسئولیت این است که موفقیتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید. شخص متفکر و متعهد می تواند جهان را تغییر دهد. همه ما نوعی اثر موجی بر دیگران داریم. سوال این است که می خواهیم کدام نوع اثر موجی را داشته باشیم. مثبت؟ یا ja منفید.